بسم الله الرحمن الرحیم خروج الخبر از مقتضای ظاهری خروج خبر از مقتضای ظاهر ببینید با توجه به درسای قبلی یک مسائلی رو توضیح داد که خبر با توجه به مخاطبش گفته میشه ولی میگه این از مقتضای ظاهر گاهی موقع خارج میشه میبینید که مثلا جایی که باید تاکید کنی تاکید نمی‌کنی جایی که تاکید نکنی کار می‌کنی تاکید می‌کنی از اون مقتضای ظاهر چی میشه <تصفيق> خارج میشه قاعده سویچار کتابی ایت صفستو شاستار اذا القي الخبر خاليا من التوكيد لخاليه الذهني ومؤكدا <تصفيق> استحسانا للسائل و مؤكد وجوبا للمنكري كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر دقیق داشته باشید؟ میگه زمانی که خبر القا بشه خالی از توکید برای انسان خالی و ذهن و استحصانا مؤکد بشه برای سائلی که متردده و مؤکد باشه وجوبا برای شخص منکر اینجا خبر طبق مقتضای ظاهر انجام گرفته اگر خبر القا بشه برای خالی و ذهن بدون توکید برای سائل متردد مؤکد بشكل استهبابي البته لا بشكل وجوبي وزماني كبرا شخص منكر بشكل وجوبي مؤكد بشته انجا بيگن كخبر تبقي مقتضى الظاهر القاشده اما قاعدة سيپانج دي قد وقد يجر الخبر على خلاف ما يقتدره الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم من ذلك ما يأتي وگاهی خبر برخلاف مقتضای ظاهر اجرا میشه با توجب ایک سری اعتبارهایی که گوینده آن رو در نظر میگیره از جمله اون اعتبارها یک الف این خالی الذهن منزلت الصائل المترددی اذا تقدم فی الكلام ما یشیرو الى حکم الخبری قرار بگیره خالی و ذهن به منزله سائل متردد اون سائلی که متردد هست پس قرار بگیره خالی و ذهن به منزله سائل متردد زمانی که مقدم باشه در کلام آن که اشاره میکنه به خکم خبر چیزی مقدم بشه با انیوج على غیر المنکری کلمنکری لظهور علامات الانکاری علیه قرار داده دا بشه غیر منکر مانند منکر ها به خاطر ظاهر بودن علائم های انکار بر چنین شخصی ها ان یجعل المنکر کغیر المنکری ان کان لدایه دلائل و شواهد لو تاملها لارتدع عن انکاریه قرار داده دا بشه منکر به مانند غیر منکر شخص منکره شما به مانند غیر منکرش قرار بودی براش تأکید نکنید بله. اگر در نزش دلایل و شواهدی بود که اگر چنانچه در اون دلایل و شواهد تعمل بکنه از این کارش دست میکشه در این حالت به منزله غیر منکر قرار داده میشه خب حالا بیایید روی امثله الأمثلة قال تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون مراد الراب تبا أنك الظلم كرده عند مخاطب قرار نده هم آنها أن ها غرق مجاند إنجاب راي خاليو الذهن تأكيد مدة إنهم مغرقون آه از باب به خاطر این که اینجا سوال پیش میاد برای نوح که آیه اینه پس حکم اینا چی میشه حکم اینا آیا غرق میشن یا نمیشن موقعی که من مخاطب نیستم خداوند داره تأکید میکنه که اینا چی میشن غرق میشن در مثال بعدی دقت کنید و قال تعالی و ما اوبر نفسی ان النفس اماتون به سو. من نفسم رو بری نمی دانم زیراک نفس همان نفس امرکنه به سو هست. اینجا مخاطب خالی از ذهن از حوق ان النفس اماتون به سو. اما از جای جمله قبلش اوده و ما اوبر و نفسی. میگه با توجه این اینجا خالی و زن به منزله طالب متردد قرار گرفته به منزله چه قرار گرفته و خبر با تأکید بیان شده ان النَفْسَ لَأَمْمَارَتُون به سوئی بله متوجه شدی این ومثال خالي دارون تشو ده؟ مده. مده. و مثال بعد این برای خالی و ذهن می‌بینیم در این مثال چه شده تاکید اومده حالا مثال سوم و قال ثم انکم بعد ذلک لمجتون ثم انکم بعد ذلک می‌بینیم که تاکید اومده ان اومده لام اومده ها اینجا سبب چیه میگه که خیلی تعکب شده میگه سبب ظهور علامت های انکاره سبب چیه؟ ظهور علامت های انکاره میگه زیرا غافل بودنشون از مرگ همینی که آمادگی نمیگیرند از علامت های چیه؟ انکار دیگه لذا اینجا خبر با... با... با... بمانزلي منكر ومده بمانزلي چه ومده؟ <تصفيق> بمانزلي وقال حجل ابن نضلت القيسي جاء شقيق عارضا رمحهو بني عمك فيهم رماحو ميگه امت شقيق در حالي كه رمحش رو و نيزش رو بپهنا گذاشته بود يعني غير حالة جنگي غير حالة چه؟ جنگي انجوري بر پاها مگزارند به این شکل که غیر حالت چیه؟ جنگیه؟ بله میگه اینا بنی امه که فیهم رباح بعدا تحکید میکنه که آقا بنی امه تو اسلحه دارند آقا داره تحکید میکنه چون اینو آقای شقیقو به منزله منکر قرار داده آخه بابا اگه قبول داشت که این جنگی اون موقع اسلحهشو اینجوری نگه نمی داشت علامات انکار کار برش وجود داره موقعی با این حالت اصلهشون نگه داشته داره براش تحکید میکنه که آقا اونا حتماً باشون چه هست؟ چلا هست داره براش حرف رو میکنه که دشمن چه هست؟ مسلحه اصله همراهش هست بس اینجا تحکید کرد در این مثال سوم و چهارم غیر منکر به منزله چی قرار داده شد به منزله منکر رو علامات اروج علامات اون اونا مرگ و جوری رفتار میکردن که گویا مرگ رو قبول اصلا uh -huh. علامتل ندار، آمادگی نداشت لازمم تأکید کرد ثم انکم بعد ذلک یعنی بیتون اینجا هم آقا شقیقو اینجوری گفت اما دقائق در في رابطة با مثال فانجوم وقال تعالى يخاطب منكري وحدانيته الله مطالب در هالكي منكران وحدانيته شروع انكار ميكونن بدون تأكيد داره بشن ميقا وإلهكم إله واحد بمنزلي الذهن الزهن منكر بمنزلي غير منكر قرار دادشده منجا منكر بمنزلي چه قرار دادشده؟ تأکیداتی انجام شما می‌بینید؟ یا مثلا شما کسی که ضرر جهل و انکار میکنه میای بهش میگی الجهل و ها بدون تأکید. بدون چی؟ آله پس در این, مص... در این مثال الله متعال اومد منکرین که وحدانیت الله رو انکار میکردند خبر رو بدون تأکید برایشون چکار کرد؟ بله. چرا میگه این کار رو کرد؟ چون همچنین برهان های قوی وجود داره که اگر چنانچه تعملی درش می این منکرین قانع می شدند چکار می بله همچنین در حالت آخری یک سری دلائلی برای مخاطب وجود داره که اگر کوچکترین ترین دقت رو بکنه برای زرارهای جهل قانع میشه و از این کارش چکار میکنه؟ دست میکشید به این جهت پس با تواجو به این اعتبارات از مقتضای ظاهر این امثله چه شدند؟ خارج بودن چیز قشنگ میگه